نه بانو نه بانو صف کن صف باز که رو کلا کردی بگه خواهر نشد جای نری باید برم هر طور شده به هر قیمتی که شده حاج دایی رو از تو بیارمش بیرون صف بیاد باید از اون اجاز رو گیری این نگاه کن میشناسیش که همون آقای دکتر عبا صدقه اعدامش کردن خدا بازش رو میشکنی این چیه با این برام رو بم بگو نه کن باش باز که داری میری، باش که میری. خانم من اکیه بذار برو. چی؟ من رحم و باز نمیاد. خانم با بازمی. دوستان خانم دیگه منم نیست. نه لعم. لعم. بزنبس بزنبس نه نه. نه چی که دیگه ولیم ولیمی زدی. یه وقت خیه ببینه کیم خانه دیگه رویدم خونه نمیاد. نه مگر من صد در صد خونهم لقی. زبونم ببینه. خانم دیگه تو نه. گذاشتم نمیده خانه بیاد. بگو نه. بگو نه ساکت. اتاق خونش کرد. چی بگو؟ برگرد مهانو ما رو بیخبر نذار آقا اون خانومی که گفته بودین تشریف آوردن هش بگودم به در متظر ببونه تا با بیا خیلی جدی و با و با اخ بش بهش بگو چشم این اندازه تشمیش شده نگرانی برای چیه مطمئنیستم حالا حاج دایی مساعد باشه میگم با مجد لگت بردنش خبر دارم ازش چرا بردنش اونجا امروز روز هیچی حساب کتاب نداره کسی نیست که بیادی ازش حساب بکشه. حالا یکی مثل تو چهار رپر رو و به داوری این اون آوزون بشه یه خبری بگیری بعد و بدبخت و بیچاره رو بگو که پشت در رو بی خبر می بدونن کیا و کجا عزیزشون رو می و چه بلای سرشون می شما کسی رو دیدی؟ با کسی حرف زدی؟ گفتم که هیچ گفتی به کلید نیست این گفت دست کیه؟ دست شما؟ من وسیله مثلا... کلید دست کلید داره گفتم بیام اینجا که ناامیدم کنی؟ استری خوده. هیش که و داوود وایستمیره. خب یعنی چی؟ الان بعد چیکار کنیم؟ فعلا دستیرش رو ببینی تا به اسارتش برسی شما من قول دادی. بس سر قوله باشه. بیا بشی. بیا. پاتون تون داری تو اینجا چگاه بکنی دلم آروم نمی گرف. باید می امدن می دیدم آمد اینجا بار تو جمع کن دست بغیر بگی از این شهر بزنیم بیرون موندنیتون به صلاح نیست نکسا نکسا رو باید ظاهر کنی بله توی دست روز با باید شک. این حرفا نیست دایی. پتون خیلی بده. باید برید بیمارستان. من خودم باشون حرف میزنم. کاری از حرف زدن حرف شما تا گذشته. به فکر تو بقیه باش. دست بجنبوت به توی بلای دیگه سرت نیومده. من بدون شما هیچ جا نمیرم. تو الان فقط برای خودت تصمیم نمیگیری که بخوای بمونی یا بری. برای زن و بچه من. برای فرغیس خانم، برای فرید خانوم، برای اوناست که دارید تصمیم میگیری. اینایی که من دیدم هر لحظه دوباره ممکنه با چماغ بزنم تو سرم صلاح اینه که بریم تمام این گیر و گرفتاری که من افتادم تو جایی می‌خوای بدونه نتیجه نمونه بعد اون رو ظاهر کنی و بری باشه اونا رو میفرستم برم ولی خودم جایی نمیرم در مورد عکسان چشم میدم ایشون به محتمدین ولی قبل شما از اینجا میارم سرکشی سرکس خودت باید اقدام کنی هیچ کسی واسه این کار است. این بخشی از تاریخ این مملکته این سند جنایت این حکومت فاسده داره چیزی از مسجد گوهرشان شنیدی؟ شنیدم یه چند نفر رو کشده. چند نفر رو کشتن؟ اون اکزا ثابت کننده همین دروغه. هزاران نفر رو کشتن تو دست دستشمی دپ کردن بدون هیچ آینه دپ دی گوش فهم اینو گوش بکن دادم میفهمه نه <تصفح> باید زیاد خورتون رو آزار <متسجار> بده سخت پشت به این بزرگی بود اینجا پرستار داره بلدن این قبل او انجام بدم درمانش میتونم من نمیدونم چرا شازده خانم ما زمان من وقت در اتفاقی میدونن که مهراد افتاده خواهر یکی شده خدا رحمتش کنه. ولی اون پسر سربهمایی بود نیاخت شبانه هم نداشت نمیدونم چرا یه دفعه همه چیز اینجوری به هم درست میشه ما خوب چایی اومده شما بیتونی با شکو خانم حرف بزنیم میخوام ببینانشون شکو؟ کتا نمیاد اون اون بکینه و لجبازه تا خاندانتونو به خاکسیان ننشونه دستبردان نیست باشون حرف بزنید خواهش میکنه درست نمیشه بهراد همه ی عمود و زندگیش بود آرزوهاشو خراب کردیم روزگارشو سیاه کردیم تو بردوختت نکنه دست بردار نیست شاید بشه یه فکری کرد چه فکری؟ شما یعنی من من میتونم جوره اشبایستم نه اینکه جریه سینسه پر کنم نه ولی اگه شما رو زیر بال پر خودم بگیرم دیگه بهتون آسیبی ننیرسه مناخره شکوه هم واسی خودش بایده و اصولی بره هر کاری نمیکنه به خانوادش آسیب نمیزنه به من سنش زیادی تو زندگی من رو برنگیرم متاسفانه متأسفانه هیچ وقت زندگی رو که باید شاید بچشیم. مرد من نیستم، خوبم نیستم. من متوسط اول حال. تیم دنیای پرگرگ متوسط اول حال بودن خیلی مرباره. منظورتون تو چی؟ شما بخوای؟ مفای... میشی خانوم خونه ی منم میشی مادر وارث و خاندانم از شمای تزاشه دادم چون هر فایی رو نداشت خوب بکن نفتر به ظاهره شکستم نگاه نکن این چین چلوکا باسه اینه تو این سالا امیز مونس خوب نداشتن اگه تفاود سال من بقوی یاری چقدره بابت محبتی که امروز کردین از تشکر میکنه ولی اگر ممکنه نگه نگهدارید میخوام پیاده بشم این یه چشمش بود ماجرای تو میگن معلوم نیست چه مچرا و افکار بد یمن دیگهای تو مغزشکمد انتخاب بین بدبختی و خوشبختیه هلاکت و سعادت پیاده میشم زندگی دو روز مهربار وخود اینکه این دو روز به خوشی بگذره یا قمخسه انتخاب خودمونه اگه با من رابیای دویل همین رو از اون دخمه برون میاره به مساعدت من زنده از اونجا بیرون نمیاره حتی ممکنه این اتفاق برای داداشتو ها پردیز خوانم بیافتن اشتباه نکن دختر. این پیشنهاد من این پیشنهاد من فقط به خاطر توی. دلم نمیخواهد از این بیشتر عذاب بکشی بخدر بیاده میشم بخدر کجا؟ دیت غدا چالیش کرده به یک خربار خواهد دختی شروع رفتید زندگی یا حارمی نخواهید داشت دختر خودم سلام سلام آویزون خودم نباشی مهندشی نیست که رو پای خودت باست دید بعد آویزون بندهی خودم خدا چیزی از بند هیچ بنده ها سنه بعدی هیچ نیست که چیزی نباشی اگه شما بخواهیم میشه خانوم خودم مادر بارس خاانددان قچ خونه اون بچه به گردن تاست یه روزی کردکنه اون گفت چه صافت داره تو وردم وفرستادم تورن که یه همچین روزی بربل تو چشمی من نگاه کن و می نه؟ یرام تر میشه اش حالم خوبه جام همه شرفی چشم خونه رو درش ببندی ول کنی بریم. ولی مغازه رو بپروشیم پولش نکنیم با حالم کشمش چشم لیورونو چشمان همه اینایی که گفتیم چشم ولی اینکه من برم نه زخم این من آقا نمیذارن. دل تو چطور... نگران من نباشید. میدونم دارم چیکار کار خطر نمی آخه اینا آدم نیستن. هیچ چیزی ازشون بعید نیست. من از هیچی نمیترسم. اون عکس رو ظاهر کن. بعدش هم غیب شدوخته. همیشه گرفتاد مصیبت نصیب ملت های می شود که در بینشان خدا از یاافت آنون شکی با بهترکی به طرف معاشراتش مباشر باید. با آدم اگه صحیح مجازی باید. و افخار بر یوم دیگه تو مخصی شد دفترم مثلا ما مراتب این رو در فرنگتی کرد بلکه کمک کرد که ندیمش هم در اونجا تحصیل کنید بی مساعدت من زنده از اونجا بیگون نمیاد حتی ما میکنی این اتفاق برای داداش دا پر میسانم بیا اگه با من را بیای هایش دویره همین پرش رو بز این دخمه دنو میاره آدم ها معمولا تو رو به خودشون کنید این نوکیسی که توب افترکوه دیشم فرمان نوکیسی خوش سلام خوش آمدی سلام من چه که میتونم براتون انجام بدم شماره اتاق هیچی چیز خیلی من میخواستم مزاحم شما بشم ولی چاره ای نداشتم من خیلی خوشحال شدم که تشبه بردیم به نظر من باید برم من باید برم ببخشید کجا برید قصه من شما با بقیه فرق میکنه من خوشحال میشم بتونم براتون کاری انجام بدم ممنون هیچوقت نتونستین واجب خودمون حرف بزنیم. الان اصلا وقت مناسعی برای گفتن این حرفا نیست نمیشه منکر احساسو تو طرف شد بفرمین بشین پایش بکنم بفرمین میتونی دارد دا این میکاری کنید؟ حتما پیگیرش میشن دایی آدم خیلی خوبیه دنباله آدمشن پیدا نکنم بفرمین فکر نمیکنه همه اینو مربوط به اون پسره باشه همون جگوله که مشپرد میکرد مناخره این دست ماده موکنه شون شطوریه نه گمون نمیکنم بسرمیم بیارم اش بیرون فقط ممکنه ایکی دو هفته ای طول بکشه واسطه و اینجا خیلی خوشقال نیستم خود این قضیه رو پیگره کنم ببین چه کار میتونیم بکنیم بباشه گسرو خوام جسارته فکر میکنیم این قبل امور عرضش اینو داره که این همه گرفتاری مسائل خودم مقاو کنیم به خاطر هیچ این همه خطر بکنیم قایده که گفتم بکنم چشم خان. اگه تا عصرم روان ندارین برم دیدن آخو نه برو وسایل از بازی رو تهیه کن بگم فالو طالبی بیارن بالا میل ندارم نادر اگه تو معامله با تو تونستم شرط آزادی شارچی رو جا بندازم که هیچ وگر نباید همه جالب آتیش بکشیم شمسی آب و روغن غذا رو بشهر کن <تصفيق> بسرم. بگی بخور پسر بسرم. دست در نکن آقا بگی. بخور پسرم امون بخور دن میفته از دن امون آدر شاره بچه تون رو نایواردی سلماز دخترم قضاتو بخور بچه ندارم مگه میشه حرف میزنی تو بزمت جه بی صدا قضا تو گفت کن کجا پسرم قضا تو نخوردی آب گوشت ما خوردن نداشت منو کرد شما سهر ما حب سیفر داری میکنی باز دو سر تندختی پایین بیالا اومدی شکوفه بزنی تو زندگی این چهار تا کور کچل فلک زده این پول عجلی اما پای میره چرا؟ ما پول زمت خودمونو میخوریم حلال نیست یاگه یا. چشت یا. یا یا. رو با کن دسته این بچه رو ببین کف دستش رو نگاه کن نون این بچه اتا اول دلم دلمه دسته خوشتر میاد ازت یاد ایچار دیفانه مالدونی امال شماست میدونم همه همون میدونیم حقیقته یه سخت گیر بیاریم که شب کف ملگمونو بذاریم فر خوردیم رفتیم میمونم اصلا خود عشر زشت بکرده جیر خور و صدقه بگیرشیم ما نونه بازومونو میخوریم اخرس خروز خون تا بوغ کوچ و کوچه پس کوچه هزار در دور تپاله و فرپشکل جمع میکنیم که شبیه لغوه نون حلال میزاریم سر صفره حتی اگر هست ناصف چه؟ وایست این تیات میکنین میکنی جلدر همسایه؟ برید تو ببینم سلام سلامم چطوری؟ خوبی کجا بودی؟ یه شب یا اوتل ایتا مرشتا باید اومدم کی بود؟ پس از ساله سال تولالزار خیلی خوب کردم. حتما یه اکمه دیده شوم ولند. هستم نمیدونی تو چه حالی؟ همش تو چیکارش کرده. جسدش رو هم تحویل و همیدم دفنش کردن نکرد حتی آرومو خرار ندارم کیه حتمیه که از مراجع کننده است تو بهش من درباز میکنه دسته تر نبود بهشون بگو دیگه دکتر نداریم اینجا ایزون مخفیانه دفنش کن. کجا؟ از زن جایی که نتونم پیداش کنم. بابا <STERHOTalities> خدا لجو جو میکله بود اینم هم آقا همه خدا رحمت بخش خدا زنیت بابا این آقا کیه می دونستم بیای جسد و غیر قانونی آوردی اینجا این پدائتم لجبازی خاطرم جم بود بیای بابا اینی شقدر چشم بودم. بوده سه روز دیگه رای فرنگم همراه من باید بیایی بیچادر و چاخچور از الان باز آدم باشی خوش اومدی بابا و تا آخر عمر زیر دست پای خودم باشی خوش بردم میام سراغت یا چند دونت آمادست و با من میای یا سرت رو میذارم لب همین بخشه با خونه تمام گلارا شوارشه. حالا. تو بیرون. بیرون. دیدی. خوب بود خب بود پولاری گرفتی بله ببینیم از چه جنسیم تاز جنب تازه رئیس گربان جناب آقای مهنگان و پیشگارشون تشریف آوردن چه دستونی میفرگایی؟ بگو فقط خودش بیاد داخل تشت گربان گربان تصدق بازم بفرمایید. او فرمودن فقط شما. بفرمایید. بفرمایید. محمد جناب مهرگان خوشودی، شدی اینجا رو به قلوم خودت منور کردی بفرما بفرما بشین خیلی خوش شدی شما عقل دنیا دیده ای نه شما هم به گفته من سهم میزدین که ماجرا پیش اومده از دست من شما خارج بوده الله ای حال کاریه که گذشته و سبوی که شکسته یعنی نه تقاری شکسته، نه ماسی ریخته بله خوب مرتفعت شدم بنابرای من دوستیه قضا و که نمیشه کرد چی شده خودت باختی لرز به جونت افتاده <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نقل این حرفا نیست هر کاری راه رسم خودشو داره بعدیم کسب هم کس کار تو این مملکت راه و روش کارو خوبی یاد گرفتن و و خان. خط رشمه و سلاشتی رو بکلکور کن خوب دندونه این مارش رو مردی با این بزار و بردار رخت و پشه که داری برچه کس نشی قرر و رو بذارین کنار چی رو بری زندور سابق برین پیرو مردی که ترخمنش رو سیابخت بخ بود و رو این صندلی تکیه داده بود به هر بد و زشت و خیپتی تن میداد ولی جنس من فرق داره باید بدونی که چقدر از ذرب و زور بیزارن. ترجیح من اینه که واسب خطو نکش خو شما که پیرند تو خوشنامی دریدی باید بهتر بدونی که دست بیغه شدن و شاخ شونه کشیدن واسه هم عاقبت خوبی نداره چه به دروغ و پرده پوشی چه داد پد و پود تو بابدم چراو دهکورتو گم بکنی بعد از گوزاشه چشم بشو کنی به خداوندی خدا بس خود از سمایه و پیر و پیغمبر را بذار کنار پای اینو رو بمیون نکش که داری واسه بینماز جانماز پرمی کنی سغرا کبرا واسه هم نچی در باغ سبز و آب چه چشمم نشونم نده که میخوام چنان روزگاه رو به کام کنم که قدر اندازش به مخیلت نمیگنجه بدبینی و بدخواهی از خواست آدمهای بازنده است این پیشنه آدمانم مبنی بر حکمتیه که تجربه نپخت و عقل نیم بندت کفاف فهمش رو نمیده شما پیاز تازه ریشه کرده بذار به گل بشینه بعد برام یه کتاب بهره طویل بخون سر به تر سنگینی میکنه که بدون فکر زبون میجنبونی با این بلایه که سر خود داوردی مردن برات فرض خان دشمن خورید میشم و جد تو تو چشمت چشم میارم. من هر چیزی درایتم حکم کرد گفتم. راهی بود به صلا هر دو. بارا بیرون تا ندادم لیفه یه تنبونتو شانت سف کنم. اینم شده حال و روزم و باید با یه مش الدنگ زبون نفهم سر کله بزنم. بیاد جلوی چشمم ظلم بزنم و یه مش لنترانی که لایق خادشای تعمیل بده. بعد بازی رو شروع کردی تازه رئیس. <تصفيق>